فصل دوم در قلب آن واقعه. این هفته از یکشنبه. عاشق آشق روزها و شبهای هفته و ماه و سال را به حال خیش رها نمی کند آشق شبیه نمی سازد آشق دم آدم چیزی را نو می کند چیزی حتی بسیار بسیار کوچک را آن سنگر کلیایی را با این سنگر کلیایی عوض کنیم خوب است؟ آقا ببخشید ما میخواییم قالیچه را که ماه پیش از شما خریدیم با این یکی عوض کنیم چیزی باید سر بدهیم؟ اصل برایت یک عاشقانه آرام ساختم یک انشای ساده مدرسه‌ای خسته نیستی که بشنوی خستم اما چرا نمی‌شود یک عاشقانه آرام را وقت خستگی شنید نگفتم نمی‌شود این هم اما ما می‌شود که انسان آنقدر خسته باشد که نخواهد حتی یک قطعه بسیار لطیف و خستگی زدای موسیقی را بشنود به خانگیل مرد شاید که عاشقانی آرام را اصولاً برای لحظه دشوار خستگی می سازند. اما اگر وقتی که میخانی خوابم گرفت و خوابم برد نمیرنجی، چرا برنجم؟ اما اگر به خوابی فکر می کنی به یک خواب دور خیلی دور می‌روی، باز خل شدی سنی از تو گذشته مرد عروسک بازی را کنار بگذار. میترسم؟ میترسم که خواب سفر ببینی سفر به سرزمین های دور دور را فکرش را بکن من اینجا کوبیده بعد از روزها و روزها نوشتن تو در جنگل هایی که هرگز ندیده ایشان با گیاهانی که نمی شناسیشان و پرندگانی غریب جنگل بی صدای بی صدای پرندگان را بستند مه چرا نباید من در این جنگل غریب بی سدا در لابلای این گیاهان سبز سیر و سبز روشن فسفوری پتویی بیندازم و صفری و چای داغ و عاشقانم را برایت بخانم بنشین. بخوان، دست از خلبازی بردار آنچه نوشتم محبوب خوب آزری من یک برنامه است فقط همین من و تو مثل بچه های مدرسه ای، دیدم که محتاج برنامه ای هستیم. تو هر روز میگویی امروز را چه کنیم؟ امروز کجا برویم؟ امروز بی بچه ها و با بچه ها چه میتوانیم بکنیم؟ من فقط یک برنامه بدون مه، بدون مغلها نوشتم. شاید اما بشود از اینجا آغاز کرد و زمان را به زمین گرم کوبید. شاید. جمعه را تصور کن که تمام کرده ایم بعد به آن میرسیم شنبه را هم دوست ندارم که شنبه ها را روز آغاز بدانیم شنبه عادت آغاز است نه شروعی مدلل عادت اراده را نابود می کند. عشق اوج خواستن است خواستن اوج اقتدار اراده عادت بازداشت کارکرده اندیشه است هرگز چیزی به اندازه عادت نفرت انگیز نبوده است مارکس را اگر گهگاه محترم داشتم بیزارم از اینکه گفته است روزی خواهد رسید که انسان همه کارهایش را به عادت خواهد کرد خودکاران زیستن پایان انسانی زیستن است عادت هر روز صبح زود برخواستن درست سر ساعت سر دقیقه سلامی به عادت نه از راه ارادت چای به عادت، اداره، امضا، اتوبوس، آب، چای، زنگ در، کتاب خواندن، خرید، خرید به عادت. هرگز چیزی به اندازه عادت نفرت انگیز نبوده است. نمازت را هم هر روز با شعوری نو بخوان. با ارتباطی نو، با برداشتی نو، به آنچه چه می‌کنی بیندیش. عبادت چرا؟ سخن گفتن با آن نیروی لایزال چرا؟ عادت فرسودگی است. ماندگی، آب راکت، مرداب تغییر بده. بیننددیش و جابجا کن. مگر هزار راه تو را به محل کارت نمیرساند. خب هر روز با اراده یکی از این همه راه را انتخاب کن. کمی دور کمی نزدیک. کمی سخت کمی آسان. مشتری شدن نوعی معتاد شدن است فقط از یک میوه فروش خرید نکن بگذار با تمام میوه فروشان سر راحت آشنا شوی لا اقل سلامهای تازه معطر نو ضد عادت آیا هرگز به پاسبان سر گذر سلام کرده ای؟ سلام کن احوال پرسی کن بگذار با تو زمانی درد دل کند مگر چه عیب دارد؟ اما نگذار به این کار عادت کنی. نان، بربری، سنگک، مشهدی، تافتون، لولهی، لغمهی، لواش، جو، شیرمال، قزوینی، بهار، تنوع حلال. چرا باید باشم به آغاز کنیم؟ گونه که انگار شمبه ها رنگشان، بویشان و تراوتشان بیشتر از پنشمبه هاست. بهار همه چیزش با تابستان، با زمستان و با پاییز فرق دارد. حق است که بهار را یک آغاز پرشکوه بدانیم. نه تنها به دلیل رویشی خیره کننده. امروز بوته سبز روشن، فردا غرق صورتی گل محمدی، امروز یاس بسته خاموش فردا سیلاب نوازنده اتر نه فقط به دلیل این رویش خیره کننده بل به علت حسی از خواستن تلبیدن آشق شدن بالا پریدن فریاد کشیدن خندیدن برادرت شادمانه میخندد و از ته دل فریاد میکشد شکوفه کردن باز شدن روح بهار بیش از آن که حادثه در طبیعت باشد، حادثه است در قلب آدمی و پیش از آن که در طبیعت محسوس باشد، در حسی انسانی وقوع میابد این در بهاران گل نیست که باز میشود، گره‌های روح انسان است در بابان زمستان های خوب، زمانی باز با تو سخن خواهم گفت تا کمر در برف، در کوهپایه های پلنگ چال، کلاهک چال، ازغال چال و همه چال های عالم. من اینجا از فصل سخن نمیگویم، از روز میگویم. شنبه ای که دوست ندارم ابتدای هفته باشد و بعد از جمعه ای آمده باشد که شادمان دویدن ها و کودکان زیستن ها خستمان کرده است، اما خسته. پاهایم هنوز درد میکند با کمی الکل آنها را به سرعت مالش بده و بعد در یک پتوبه پیچ و مدتی گرم نگهشان دار دیروز صد بار گفتم اصل اینقدر به دنبال آن توپ دیوانه آواره ندو و تو آزری بدپیله خندیدی و باز دویدی بچش تعم دو ساعت لابلای ها و شاخه ها در کنار رودخانه دویدن را بچش. آقبت همان توپ مجنون ولگرد را به دست رودخانه بیخیال خروشان سپردی. چه حسرتی، چه حسرتی در دل انسان میماند. آنجا، آنجا، نگاه کنید، آنجاست، رفت زیر، دیگر نمیبینمش. آها، آنجا، اینجا. آمد. پایت را میگیرم، دستت را دراز کن. زود باش. آخ، رفت. رود چیزی را با خود میبرد که دیگر نمیتوان بازش گرداند. آن قلاب ماهیگیری در سرداب رود، آن جاری مجلل تاریخی چطور؟ بازیافتنی است؟ آن گل غریب ساعتی که روی پل کنار پناهگاه از دستت افتاد چطور؟ عجب ساختمان ای داشت نه؟ بله اما من دوستش نداشتم. شبیهش را باز هم دیدم. زیبا نبود. شلوغ بود. شاید به دلیل نظم این ناپذیری که داشت. با وجود این در لحظه های زیبا بود اصل. زیبا بود. تو نخواستی زیبایی لحظه ایش را ببینی. به گردش نچرخیدی یا آن را نچرخاندی. کوتاه آمدی. زود تصمیم گرفتی که دوستش نداشته باشی ادراک زیبایی کار آسانی نیست گیل مرد ساعت را از روی گل ساعتی ساختند یا گل ساعتی خودش را شبیه ساعت کرده است با آن اقربه ها و شپه شماره ها و ریز نخش های شلوغ بود زیبا نبود بگو تا آخر عمر همین را بگو من ابدا دلگیر نمیشم. دلگیر نشدن کار آسانی نیست، ظرفیت می هرکس که گفت من ابدا دلگیر نمی شوم بدان که از ارتفاع دلگیری سخن می گوید. گل ساعتی را دوست نمی دارم. تو به من آموختی، ساعت را دوست نمی دارم. زمان را دوست نمی دارم. خاطره خاطر را دوست نمی گذشته را دوست نمی دارم. هر قدر که می شیرین باشد. رفتن به گذشته بریدن از حال است بریدن را دوست نمیدارم رودخانه را دوست میدارم اما عبور رود را دوست نمیدارم دریا دریا دریا هنگامه می کند گیل مرد تو چطور منطق آشقانهات را میفهمی و تدریس میکنی اما فرق میان دریا و رود را احساس نمیکنی دریا میخروشد نعره می کشد، سر به صخره ها می پیش میتازد، عقب می نشیند، اما در همه حال زمان را نفی میکند، گذشتن را، رفتن را، پیر شدن را، شکستن و تا شدن را، مرگ را و تدفین را. آه اصل، من و تو یک پارچه و یک پارچه اختلاف. عجیب است واقعا.